اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شیئ فأن لله خمسه وللرسول فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربا واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم <تصفح> آمنتم بالله وما على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى والله على كل شيء هر گون قنیمتی به دست آوردید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 بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عنه بينه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم آنگاه كه شما به کناری نزدیک تر بودید و آنها به کناری دور تر بودند و کاروان قریش پایین تر از شما بود و اگر با یکدیگر بعد میگذاشتید قطعا در انجام وعده خود اختلاف می کردید. ولی خداوند بدون میعاد شما را جمع کرد و رو یک روی قرار داد تا کاری را که می بایست انجام شود به انجام برساند تا آنکه حلاق می شود از روی دلیل حلاق شود و کسی که زنده می ماند از روی دلیل زنده ماند و همانا خداوند شنوای ی إذ است یوری کهم که الله فی منامک قلیلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولكن الله سلم انه علیم به یاد آور آنگاه که خداوند ادهی آنها را در خوابت به تو اندک نشان داد و اگر زیاد نشان میداد مسلما سست می شدید و در این کار اختلاف می کردید ولی خداوند شما را از سستی و اختلاف سلامت داشت بیگمان او به آنچه در سینه هاست آگاه است.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 یا ایوها الذین آمنو اذا لقیتم فیعتا فثبتو و الله کثیرا لعلكم تفلحون ای کسانی که ایمان آورده هنگامی که با گروهی از دشمن روبرو شدید پایدار باشید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 و با همدیگر نزا نکنید که سوست شوید و قوت شما از میان برود و صبر کنید بیگمان خداوند با صابران است ولا لا تکونو خرجوا خرجو من دیارهم بطرا و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 و خدا بند، به آنچه می‌کنند، اهاعت دارد. و از زین لهم الشیطان اعمال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس و اني جاول لكم فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ طَوْبَةٍ وقال, وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ أُمٌّ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي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 و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم و به یاد آورید هنگامی را که منافقان و آنان که در دلهایشان بیماری است گفتند اینان را دینشان بفریفته است و هرکس بر خدا توکل کند پس بیگمان خداوند پیروز و حکیم است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 عذاب سوزنده را بچشید. بما قدمت ایدیکم وان الله ليس بظلام للعبید این به خاطر کارهایی است که پیش از این فرستاده اید و آنکه خداوند هرگز نسبت به بندگانش ستم روا می دارد. كذ اب فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوی شدید العقاب همانند شیوه فرعونیان و کسانی که پیش از آنان بودند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 ذلك بأن الله لم مغيرا على قوم حتى يغيروا, حتى يغيروا ما وأن الله سميع عليم این بدان خاطر است که خداوند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 کذبوا بآیات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين مانند شیبه فرعونیان و کسانی که پیش از آنان بودند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 یقیناً بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کافر شدند پس آنان ایمان نمی آورند الَّذین عاهدت منهم ثم عهدهم في كل وهم لا يتقون. کسانی که با آنها پیمان بستی، سپس هر بار پیمان خود را می شکنند و آنها در خیانت و پیمان شکنی از خدا نمی ترسند فَإِمَّا فا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ پس اگر آنها را در میدان جنگ بیابی چنان به آنان حمله ببرد تا کسانی که پشت سر آنها هستند بترسند و باشد که پند گیرند و این ما تخافن من قوم خیانتا فنبذ الیهم على سواء این الله لا يحب الخائمی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 نپندارند که پیشی گرفتند آنها هرگز ما را ناتوان نخواهند کرد و اعدو لهم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم و و مِنْ من دونهیم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما تنفقو من شیئین فی سبیل الله وفق ایلیکم و لا تظلمون و آنچه از نیرو در توان دارید برای مقابله با آنها آماده سازید و همچنین از اسبان بسته ورزید مهیا کنید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید و همچنین دشمنان دیگری غیر از آنها را که شما نمی و خدا آنها را می شناسد بترسانید و هر چیزی را که در راه خدا خرج می کنید پاداشش به تمام و کمال به شما داده می شود و به شما ستم نخواهد شد و فجنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العلیم و اگر به صلح مایل شدند پس تو نیز از در صلح درای و بر خدا توکل کن بی بیگمان او شنوای داناست وَإ يريدأَ يخكَ فَإ حسبك الله هو الذي أيدك بصه وَ بالمؤمنِن و اگر بخواهند تو را فریب دهند پس خدا برای تو کافی است. اوست كه با یاری خود و مؤمنان تو را تأیید و تقویت کرد وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ این عزیز حکیم و بین دلهای آنها الفت داد اگر تمام آنچرا که در روی زمین است خرج میکردی کردی نمی توانستی بین دلهایشان الفت دهی ولی خدا در میان آنها الفت داد همانا او پیروزمند و حکیم است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 و ان يكن منكم مئه يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون اي پیامبر مؤمنان را به جنگ تشویق کن اگر 20 نفر برد بار از شما باشند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 میتون صابرتون یغلب میه تین و منكم یکم این کم الفون الله. والله مع الصابرين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 ما كان لنبي ان يكون له اسرا حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم هیچ پیامبری را سزاوار نیست که اسیرانی داشته باشد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 اگر حکم پیشین الهی نبود قتعا در آنچه گرفتید عذاب بزرگی به شما می رسید. مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله إن الله غفور رحیم پس از آنچه غنیمت گرفتید.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 ای الله في قلوبكم خيرا, يؤتكم خيرا, يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم پیامبر به اسیرانی که در دست شما هستند بگو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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ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 والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا تكن فتنه في الأرض وفساد كبير و کسانی که کافر شدند دوستدار و یاور یکدیگرند اگر شما ای مؤمنان این کار را نکنید فتن و فساد بزرگی در زمین برپا خواهد شد وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَن وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آوَن وَنَصَرُوا اولائِ هم المؤمنون حقا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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم برائتم من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين اعلام بيزاري اسوي خدا وبيام برش به كسان از مشركان است كه با آنها مان بستهید فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزالكافرن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 ناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فعلمو أنكم غير معجز الله و وبشّر الذين كفروا بعذاب أليم و این اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خداوند و پیامبرش از مشکان بیزارند پس اگر توبه کنید برای شما بهتر است و اگر روی بگردانید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 آنها را رها کنید بیگمان خداوند آمرزندی مهربان است و این احد من المشرکین استجارک فأجره حتی يسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه ذالک بأنهم قوم لا يعلمون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 و قلوبهم واكثرهم فاسقون چگونه پیمانی باشد در حالی که اگر بر شما پیرو شوند نخیشاوندی را رعایت می کنند و نه پیمان را شما را با زبانهایشان خوشنود میکنند ولی دلهایشان دارد و بیشترشان نافرمانند اشتروا بآيات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله إنهم ساء ما كانوا يعملون. آیات خدا را به بهای ندكی فروختند پس مردم را از راه او باز داشتند آنها کار بدی انجام میدادند لا يرقبون في مؤمن الا ولا هم المعتدون در باری هیچ فرد مؤمنی خیشاوندی و پیمان را رعایت نمی کنند و آنان مردمی تجاوز فاین توبوا اقاموا الصلاه واتوا الزکات فاخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون پس اگر توبه کنند و نماز را برپا دارند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 زیرا آنها عهد و پیمانی ندارند باشد که از کردار خود دست بردارند الا تقاتلون قوما انكثوا ايمانهم وهم وهم با اخراج الرسول وهم هم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه این مؤمنین آیا با گروهی که پیمانهای خود را شکستند و قصد اخراج پیام برکردند نمی جنگید در حالی که آنها نخستین بار جنگ با شما را آغاز کردند آیا از آنها میترسید؟ پس خداوند سزاوار تر است که از او بترسید اگر ایمان دارید قاتلوهم یعذبهم الله بی ایدیکم و, و عليهم و ینصرکم علیهم و ینصرکم علیهم صدور قوم مؤمنین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 أم حسبتم أَن تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون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 ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شهيدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النارهم خالدون مشكان را سزاوار نیست که مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خیش گواهی می‌دهند آنها اعمالشان نابود شده و در آتش جهنم جاودانه خواهند ماند انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله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 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله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 الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله باموالهم و انفسهم أعظم درجه عند الله مقام کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با انوالشان و جانهایشان در راه خدا جهاد کردند نزد خدا برتر است. و آنها همان رسگارانند یبشیرهم <تصفيق> ربهم برحمه منه و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 خالدین فیها ابدا این الله عنده اجر عظیم هموار آن جاودانند بیگمان عجر و پاداش بزرگ نزد خداونده است يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء اين استحب الكفر على الإيمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ای کسانی که ایمان آورده اید پدران خود و برادران خود را دوستان به اولیای خود قرار ندهید اگر کفر را بر ایمان ترجیح دادند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 وکم و اخوان کم و نقترفتموها و تخشون کسادها و ترضونها أحب إليكم من الله يأتي الله والله لا القوم بگو اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خیشاوندانتان و انبالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد آن می ترسید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 و رحبت ثم براستی خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد و پیروزی بخشید و در روز حنین نیز یاری کرد آنگاه که فزونی جمعیتتان شما را شگفت آورده بود پس سودی به حالتان نداشت و زمین با همه فراخی و وسطش بر شما تنگ آمد و سپس پشت نموده فرار کردید ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین كفروا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 ثم يتوب الله <سبحانه> من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم سپس خداوند بعد از آن توبهٔ هر كس را بخواهد میپذیرد و خداوند آمرزنده مهربان است يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ای کسانی که ایمان آبرده اید بیگمان مشرکان پلیدند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 قاتلوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ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 ندین حق را میپذیرند جنگید تا زمانی که با ذلت و خاری به دست خیش جزیه بدهند وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم یضاهئون قول الذین كفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفكون و یهود گفتند عذیر پسر خداست و نصار گفتند مسیح پسر خداست این سخنی است که با زبانهایشان میگویند مشابهت می سخن کسانی که پیش از این کافر بودند خدا آنها را بکشد چگونه از حق منحرف میشوند شوند اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم و ما امرو لا اله الا سبحانه آنها دانشمندان و رهبان خیش و همچنین مسیح پسر مریم را معبودانی به جای الله گرفتند در حالی که دستور نداشتند جز خداوند یکتا که هیچ معبودی جز او نیست بپرستند او پاک و است از آنچه شریک او قرار می دهند یریدون این یطفعون نورالله الله افواههم و یعبالله الا این یتم نوره ولو کرها الكافرون آنها میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و خداوند ابا می کند مگر اینکه نورش را کامل و تمام کند اگرچه کافران کراهت داشته باشند هو <تصفيق> ارسل رسوله بالهدى و الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه دین ها غالب گرداند اگرچه مشرکان کراحت داشته باشند يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذهب وَالْفِضَّةَ ولا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فبشرهم فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ ای کسانی که ایمان آورده اید بیگمان بسیاری از احبار و رحبان انوال مردم را به باطل می خورند و دیگران را از راه خدا باز می‌دارند و کسانی که تلا و نقره را میاندوزند و در راه خدا انفاق نمی کنند پس آنها را به عذابی دردناک بشارده یوم یحما علیها في نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما, ما كنتم لآنفسكم فذوقو ما كنتم روزیک آن را در آتش جهنم گرم کنند پس با آن پیشانی هایشان و پهلوهایشان و پشت را داغ کنند و به آنها گفته شود این همان چیزی است که برای خود اندوختید پس بچشید تأمه آنچه را میاندو عِدَّةَ الشُّهُورِ الشهور عند الله <تصفح> فِي عشر اللَّهِ يَوْمَ كتاب الله يوم خلق السماوات حُرُمٌ منها الدِّينُ حرم القيم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 ای تعداد ماه ها نزد خداوند در کتاب خدا از آن روز که آسمان ها و زمین را آفرید دوازده ماه است. که چهار ماه از آن ماه حرام است، این دین ثابت و درست الهی است پس در این ماه ها به خود ستم نکنید و دست جمعی با مشکان بجنگید همان گونی که آنها دست جمعی با شما میجنگند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است این من نسیع زیادت فی الکفر یضل بهی الذین کفر و یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطئو لِيُوَاطِعُ عِدَّتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ اَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِلْ قَوْمَ الْكَافِرِينَ همانا به تأخیر افکندن و جا به حرام افزونی در کفر است کسانی که کافر شدند با آن گمراه میشوند. یک سال آن را حلال و یک سال دیگر آن را حرام می کنند. تا مطابق با تعداد ماه هایی شود که خداوند تحریم کرده است پس آنچه را که خدا حرام کرده حلال می شمارند اعمال زشتشان در نظرشان آراسته شده است و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله قالتم إلى الأرض أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة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 حال آنکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی هیچ نیست إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير اگر برای جهاد کوچ نکنید خداوند شما را به عذاب دردناکی عذاب می کند و قوم دیگری را به جای شما قرار میدهد و هیچ زیانی به او نمی رسانید و خداوند بر هر چیزی تواناست اِلَّا تنصروه فقد نَصَرَهُ الله اذ اخرجه الَّذِينَ كفروا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 انزل الله سكينه عليه واندهه بجنود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم اگر اورا یاری نکنید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 و و في رُخفافه و گرانبار همگی برای جهاد کوچ کنید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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون اجرمتاي نزدیک و دست یافتنی بود و سفری آسان و نزدیک در پیش بود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 ف الله عن كل مذت لهم حتى بن لك الذي صدقوا وتعلم الكذبي ای پیامبر خدا تو را ببخشاید چرا به آنها اجازه دادی پیش از آنکه راست گویان بر تو آشکار شوند و دروغ گویان را بشناسی؟ لا یَسْتَأْذِنُکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ أَن یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ کسانی که و روز آخرت ایمان دارند هیچ برای ترک جهاد با اموالشان و جانهایشان از تو اجازه نمیخواهند و خداوند نسبت به پرهیزگاران داناست اینما یستعذن الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخری و قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون تنها کسانی از تو اجازه می‌خواهند که به خدا و روز آخرت ایمان ندارند و دلهایشان گرفتار شکست و آنها در شک و تردید خود سرگردانند ولو ارادو الخروج لأعدو له عدتا ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم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 لو خرجوا فيكم ما زادوکم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم فیکم سماعون لهم والله عليم بالظالمين اگر آنها همراه شما بیرون می آمدند جز فساد و تباهی چیزی بر شما نمیافزودند و به سرعت در میان شما فتن انگیزی می و در میان شما افرادی هستند که به سخنان آنها گوش فرامی دهند و خداوند نسبت به ستمکاران داناست لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الحق وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ راستی که آنها پیش از این نیز فتنگری می کردند و کارها را برای تو دگرگون کردند تا آنکه حق ورا رسید و فرمان خدا آشکار شد و شما پیروز شدید در حالی که آنها کراحت داشتند و من هم من یقول اذلی ولا تفتنی الاف الفتنة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ بعضی از آنها میگویند در ترک جهاد به من اجازه بده و مرا به فتنه و گناه نیفکن آگاه باشید که آنها در فتنه افتاده اند و بیگمان جهنم کافران را احاطه کرده است اگر تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا به تو نیكی برسد آنها را می کند و اگر مصیبتی بر رسد میگویند ما پیش از این چاری کار خود را اندیشیده ایم و شادمان باز میگردند قل یصیبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا اننا معكم متربصون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 بگو انفاق کنید چه از روی میل باشد یا به اکراه هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد زیرا شما مردمی فاسق و نافرمان هستید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 هم کفر به الله ولا رسول او کردند و كسالا را جز در حالی که تنبل بودند و جز در حالی انفاق بیزار چیز مانع پذیرش انفاق‌های آنها نشد، مگر اینکه به خدا و پیامبرش کافر شدند و جز به دلیل برای نماز حاضر نمیشوند. و با کراحت انفاق نمی کنند فلا تعجب کأموالهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذبهن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 و اگر از آن چیزی داده نشود، فورا خواهش میگیرند و لو انهم رضو ما آتاهم الله و رسوله و مِنْ و قالوا الله الله من فضله و رسوله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 والله علیم حکیم صدقات و زکات ها مخصوص فقرا و مساکین و کارگزاران آن و دلجویی شدگان و برای آزاد کردن بردگان و عدای وام بدهکاران و در راه خدا و به راه ماندگان است این فریزه ای مقرر شده از جانب خداست و خداوند دانای حکیم است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 وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ و از آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار می دهند و میگویند گوش و خوش باور است بگو برای شما گوش است. به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق میکند. و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده و کسانی که رسول خدا را آزار می برایشان عذاب دردناکی است یحلفون بالله لكم لیردوکم والله و رسوله احق <تصفيق> و ای يرضوه كانوا منافقان برای شما به خدا سوگند یاد میکنند تا شما را خوشنود سازند در حالی که اگر ایمان داشتند شایست تر این است که خدا و رسولش را خوشنود سازند ألم يعلمو أنه من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 این همان رسوایی بزرگ است یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون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 لا تَعْتَلِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ عَفْوًا طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ أَوْزِرْنَ oh, يَا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 یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم این المنافقین هم الفاسقون مردان منافق و زنان منافق همانند هم, هم و از یک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 وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فيها هی حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم خداوند به مردان منافق و زنان منافق و کفار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 كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا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 آیا خبر کسانی که پیش از آنها بودند چون قوم نوح و آد و سمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهای زیر و رو شده قوم لوت به آنها نرسیده است که پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند ولی نپذیرفتند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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلك هو الفوز خداوند به مردان مؤمن و زنان مؤمن باغ هایی از بهشت بعد داده که نهرها از زیر درختان آنجاری است. جاودانه در آن خواهند ماند و نیز خانه های پاکیزهای در بهشت های جاوید نصیبشان فرموده و خوشنودی خداوند از همه اینها برتر است. این همان، يا بزرگ است النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير اي پیامبر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 من عاهد الله لئن آتانا من فضلهی لنصدقن لنصدقن ولنکونن من الصالحین بعضی از آنها با خدا عهد و پیمان بستند که اگر خداوند از فضل خود نصیبی به ما دهد قطعاً صدق صدقه زکات خواهیم داد و از نیکوکاران خواهیم بود فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون پس چون خداوند از فضل خود به آنها نصیبی بخشید به آن بخل ورزیدند و ایراز کنان روي گرداندند و سرپیچی کردند. فاعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدو بما أخلف الله ما وعدوه و بما كانوا يكذبون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 الله يعلم سرهم و و الله علام الغیوب. آیا نمیدانستند که خداوند اسرارشان و سخنان در گوشیشان را می داند و بیگمان خداوند دانای غیب هاست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 فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُو مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُو مَعِيَ عَدُوًا اِنَّكُمْ رَضِیتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ مَعَ الْخَالِفِينَ پس اگر خداوند تو را سوی گروهی از آنها بازگرداند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 و بر کنار قبرش نیست. بیگمان آنها به خدا و رسولش کافر شدند و در حالی که فاسق و نافرمان بودند مردند ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم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 و نزلت سورهٔ آن آمینو بالله و جاهد مع رسولِه استأذن کُل الطولِ منهم و قالوا ذرنا نکم مع القاّئين. و هنگامی که سوره ای نازل شود که به خدا ایمان آورید و همراه پیام برای جهاد کنید. توانگرانشان از تو اجازه میخواهند و گویند بگذار ما با خانیشینان باشیم. رضو بئی ان يكون آنها راضی شدند که بازنان و بازماندگان باشند و بر دلهایشان مهر زده شد. پس آنان چیزی نمی فهمند لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بی اموالهم و انفسهم و اولائک لهم الخیرات و هم المفلحون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 و جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد قعد الذین کذبوا الله ورسوله رسوله الذين كفروا منهم عذاب أليم آورندگان از اعراب آمدند تا بی آنها اجازه داده شود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 بر ناتوانان گناهی نیست و نه بر بیماران و نه بر کسانی که چیزی نمیابند خرچ خرج کنند گناهی است هرگاه برای خدا و پیام برش خیر خواهی کنند بر نیکوکاران هیچ راه سرزنش نیست و خداوند آموزنده مهربان است ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعيلهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون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 مع الله قلوبهم فهم لا يعلمون. تنها راه سرزنش بر کسانی باز است که از تو اجازه میخواهند. در حالی که توانگرند آنها راضی شدند که بازنان و بازماندگان باشند و خداوند بر دلهایشان مهر نهاده است پس آنان چیزی نمی دانند.